آنا شنبه بیست 20 جولای 2013 صبح ایو درست قبل از ساعت شیش بیدار میشه. از رخت خواب میرم بیرون میرم سمت اتاق نوزاد و بغلش میکنم. به شیر میدم و برش میگردم توی رخت خواب کنار خودم. وقتی دوباره بیدار میشم تام کنارم نیست. اما صدای قدماش روی پله ها شنیده میشه. تره آواز میخونه. آهسته و ناکوب. تولدت مبارک، تولدت مبارک، <تصال> اصلا یادم نبود، کاملا فراموشش کرده بودم، من تو فکر هیچی نیستم جز دختر کچوله ملوسم، حالا دارم میخندم، قبل از اینکه درست حسابی بیداشم، چشم باز میکنم و ایوم لبخند میزنه، وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم، تام وایسده کنار تخت، یه سینی دستشه، از سر تا پا فقط یه پیشبند پوشیده، بدونه هیچ چیز دیگه میگه صبونه تو تخت خواب برای تولد دختر خانم. طبق سینی رو میذاره رو تخت و مثل برق دور میزنه و میبوستم. هدیامو واز میکنم یه دونه دستبند نقره قشنگ با خاتم کاری عقیق از طرف ایو دارم و یه دونه لباس خواب ابریشمی سیاه و یه شلوارک از طرف تام. نمیتونم رو لبخندمو بگیرم. میشنه رو تخت و با ایو که وسطمونه دراز میکشیم. دخترک انگشتاشو محکم حلقه کرده دور انگشت سبابه تام و من پای صورتی خشكلشو گرفتم و الانه که قلبم خوشی وایسه. این غیر ممکنه این همه عشق غیر ممکنه یکم بعدتر وقتی ایو از دراز کشیدن خسته میشه ورش میدارم و میریم پایین و میذاریم تام یه چرتی بزنه این خواب سزاوارشه چرخی تو خونه میزنم و یکم مرتبش میکنم قهوامو بیرون توی ایوون میخورم. به قطارای نیمه خالی که با سر و صدا رد میشن نگاه میکنم و به نهار فکر میکنم. هوا برای کباب پختن خیلی گرمه اما من این کارو میکنم. تام گوشته کبابی رو خیلی دوست داره. میتونیم بعدش بستنی بخوریم تا خونک بشیم. فقط باید نوشیدنی گازداری مثل... مثل ملوت بگیرم. بر همین ایو آماده میکنم میذارمش تو کالسکه و راه میافتیم سمت فروشگاه همه به من میگفتن دیوونه بودم که قبول کردم برم خونه تام و بعدش فکر کردن دیوونه بودم با مردی که سابقه تأهل قبلی داشته ازدواج کردم اونم مرد متأهلی که همسری نامتعادل داشته و من بهشون ثابت کردم این یکی و دیگه دارن اشتباه میکنن مهم نیست اون دختر چقدر درد سر درست میکنه داشتن ایو و تام به همه چی میارزه. اما در مورد خونه حق با اوناست. روزه مثل امروز که آفتاب به این خوبی میتابه، وقتی آدم پا میذاره تو این خیابون باریک تمیز که بومبسته بنبستم نیست، اما با ردیف درختاش همون صمیمیت کوچه های خلوت رو داره خیلی عالیه. پیاده رو در تصرف مادراس آدمایی مثل من، سگاشون که جلو جلو میرن و بچهایی که تازه راه افتادن و توی رور رو, رو قدم بر میدارن. از این عالیتر هیچ پیدا نمیشه. میتونه تونه عالی باشه. اگه صدای جیغ گوش خراش کتارش شنیده نشه. میتونه تونه عالی باشه. اون زیاد که آدم بر نگرده پشت سرش خونه ی پلاک پونز در رو نگاه کنه. وقتی بر تام پشت میز اتاق غذاخوری نشسته و داره به چیزی توی کامپیوترش نگاه میکنه. شرت پوشیده بدون پیرهان. میتونم عضلاتش رو که زیر پوستش موقع تکون خوردن حرکت میکنه ببینم. نگاه کردم به این از هنوزم حوثیم میکنه. سلام میکنم اما توی عالم خودشه. و وقتی انگشتم و میذارم روی یهو یهو عجا اجا میپره. رو سریم می ببنده میگه هی hey, سلام. بلند میشه و لبخند میزنه. اما به نظر خسته است. نگران. ایو رو ازم میگیره. بدون که به چشمام نگاه کنه چی شده این چی بود میگه هیچی و میره سمت پنجره ایو رو روی یه پاش میذاره و باش قدم برمیداره تام چی شده هیچی برمیگرده و نگام میکنه قبل اینکه حرف بزنه میدونم چی میخواد بگه ریچله بازم یه ایمیل دیگه سر تکون میده و خیلی آزرده نگام میکنه خیلی ناراحت و من متنفرم از این وظن نمیتونم این وضع تحمل کنم. گاهی میخوام این زنه رو بکشم. چی گفته؟ دوباره فقط سر تکم ده. مهم نیست فقط مثل, مثل همیشه مزخرف. میگم من نگرانم. و نمیپرسم که دقیقا چه مزخرفی گفته. چون میدونم نمیخواد به هم بگه. اون بیزاره از اینکه منو با این چرندیات ناراحت کنه. چیزی نیست. هیچ چی نیست فقط معاملات همیشه در اثر مستیه خدایا نمیخواد گورشو گم کنه؟ اون اصلا نمیخواد بذاره ما خوشحال باشیم؟ با دخترمون میاد بالا سر و همینجور که ایو وسطمونه میبوستم و میگه ما خوشحالیم، خوشحالیم عصر ما خوشحالیم ناهار خوردیم و بیرون توی چمن دراز کشتیم و بعد وقتی هوا خیلی گرم شد رفتیم تو و همطور که تام برنامه مسابقه سوارکاری پرش اسب رو نگاه میکرد و خوردیم من و ایف خمیر بازی کردیم و حتی به نظرم یه ذره از خمیر رو هم کاملا قورت داد به چیزی که اون پایین توی خیابون در جریان فکر میکنم و فکر میکنم به اینکه چقدر تو زندگیم خوششانسم و هر چیز رو که میخواستم دارم وقتی به تام نگاه میکنم خدا رو شکر میکنم که منو پیدا کرد من بودم که از شر اون زن خلاصش کردم بالاخره دیوونش میکرد واقعا اینجور فکر میکنم به خاک سیاه مینشوندش و ازش چیزی می که خودش نبود. تام ایو برده بالا تا همو کنه. با لذت صدای و داد دختر فسقلی رو از اینجا میشنم و باز دارم لبخند میزنم. تمام روز این لبخند از رو لبم افتاده بود. ظرفارو میشورم، اتاق نشی رو مرتب میکنم، به شام فکر میکنم، یه چیز سبک درست کنم، با <تص> اخه چند سال قبل متنفر بودم از اینکه روز تولدم تو خونه بمونم و پخت و پرس کنم. اما حالا این عالیه باید این جور باشه. فقط ما ستا. از با بازی های ایو برمیدارم توی اتاق نشمن پخش و پلا شدم. برشون می گردنم سر سریجاشون. مشتاقانه منتظرم امشب زود بخوابونمش لباس خوابی رو که تام برام خیده بپوشم. هنوز خیلی مونده تا هوا تاریک بشم و من شمایه روی تاقچه شینن رو روشن می و دومین بطری مل رو باز میکنم. و میذارم هوا بخوره همین که میرم روی مبل تا پرده ها رو بکشم یه زنو میبینم سرشو انداخته رو سینش و توی پیاده روی مقابل به سرعت میدوه اون سرشو بلند نمی کنه اما اما خودشه مطمئنم که خودشه بیشتر سرک میکشم قلبم توی سینم میکوبه سعی میکنم بهتر نگاه کنم اما زاویه بده و حالا نمیتونم ببینمش برمیگردم، آماده میشم که یه راست برم جلوی در و تو خیابون دنبالش کنم اما تام اونجا توی چارچوب در وایستاده، ایو رو توی هوله پوشونه و بقلشه میپرسه، حالت خوبه؟ چیزی شده؟ میگم، هیچی... دستامو توی جیبم میچپونم تا نتونه لرزششونو ببینه هیچی، واقعا هیچی